خوشگل خوشگل دنیای تو اگه اینو خوب بفهمی قیمت گل روی سر خوشگلت به قیمت عشق حسرت نبودن همین گل روی سر دوستته قشنگ ترین قشنگ دنیای تو اگه چشمای پر زندگیت تو چشای پر مردن اونی که بغل دسته یه لحظه بوی نم بده قشنگ ترین قشنگ دنیای تو اگه قسمت کنی مداد رنگی یا تو با اونی که یه دونه مداد مشکی واسه نوشتن داره همه مثل هم نیستن توی جای که تو زندگی کردی خیلی یا زندگی نکردن یاد گرفتن دنبال زندگی نگردن کفوش واسه همه یکی بود اما کفش پر از فر قشنگ ترین قشنگ دنیای تو اگه دست دادن رو یاد بگیری عشق یاد بگیری زندگی توی خونه های بی امکاناته شهر رو یاد بگیری دلیل عقب بودن خیلی دوستاتو بفهمی به خودت مغرور نباشی کنار این که سرت بالا سر پایین انداختنم یاد بگیری قشنگترین قشنگ دنیای تو اگه اینو خوب بفهمی همه همن قد همن هیچی ملاک برتری نیست حتی هنر دقیقاً برعکس خیلی وقتا که فکر میکردم میشه خیلی مرزا رو شکست از تموم محدودیتا با دست باز و سر بلند اومد بیرون دیدم نه قشنگترین قشنگ دنیای تو اگه سنگ تو مسیر هیچ آبی که داره میره نشی تنگ نکنی هیچ رودخونه ای رو قشنگترین قشنگ دنیای تو اگه قشنگی رو تو قشنگی های دنیای که تو شستی فقط نبینی چشم لب یا دهن قشنگن قشنگتر اینه که بلد باشی ارزش دیدن شنیدن یا حرف زدن به فهمی از خنده اکثریت وقتی توی اقلیتی نترسی چون اقلیت یه رو میشه اکثریت نبرعکس از نبودن امید هیچ چیز نیست قلط مرگ نیست وقتی کنار تدف پس.